با درود بر پدر و استاد بزرگ دکتر فیدون جنیدی آیا داستان رستم و سهراب از گزند افسایندگان سالم باقی مانده یا خیر؟ در, صورت در, صورت در این صورت افسوده های راه یافته در داستان آنها را بفرمایید. سوال دوم اینکه که رستم و سهراب بر اثر خطا و اشتباه رستم به وجود آمده یا تقدیر و خواست پروردگار بوده است. و دیگر اینکه خدمت هر کدام از آیین‌های سرتوش زروانیس و مهر را بفرمایید همیشه موفق و پیروز خاک پای شما پوریا از اهواز سلامت باشید امید جان من پوریا چند تا سوال می‌کنین من یاد داشت نکردم اینا <تصفيق> <تص بله. من, من ببینم که رستم و سراب در حقیقت هفته پیش من بیان کردم گناه به گردن مادر سهرابه که پند بهش نمیده که با, پدر، با کشور پدر خود نرو به جنگ در هفته پیش این موضوع در بحث شد در باره زربانی ما هیچ گفتاری درباره کیش زربانی نداریم مگر گفتار یه نویسنده ارمن به نام یزنی کخباتسی این باید بدونیم که وقتی که اردشیر خیانت کرد به اردوان و شاهنشاه ایران رو کشت حالا در کودتا هر طور بوده که نیست خبرشو نداریم برای اون چیزی که در کارنامه اردشیر باباکان آماده همه اینا قابل نقده و من در آینده ای کار خواهم کرد بالاخره در ای تا این کار کرده گمان پیشتر از این که من این جریان رو بگم آقای دکتر قرامزا سلیم که نخستین دکتر تاریخ دانشگاه تهران هستند ایشون هم گفت من متقدم که کودتا بوده پس از این کار که با جنگ و با ستم و با کشتار بزرگان ایران همراه بود ارمنستان به طور کلی از ایران مرکزی برید و برای این که پادشاهشون عشقانی بودند برید و به سوی روم رفت و حتی کیش خودشون عوض کردم و کیش مسیحت رو پذیرفتن که با ایران هیچ پیوند دیگه نداشت. یعنی با ایران ساسانی. اون وقت نمیستندگان شروع کردم به بدگویی باستان خودشون. بزرگترین من خودت این تاریخ ارمن که موسس خورناتسی هست که ما میگیم موسی خورن. او در کتابی که درباره تاریخ ارمنستان نوشته خودش در حقیقت گذشتی خودشون چون نفت کرده بود ما یک مردم چوبان کرده بی پا بودیم هیچ کونه فرهنگ نداشتیم هیچ اثری نداشتیم و اینها تا وقتی که کش مرسیت رو پذیرفتیم در حالی که امروز در ارمانستان گرامی پدیده های مهری پدیده های هنر باستان پدید میاد و نشون میده که چقدر این کشور یعنی این بخش از ایران و باستان که بعد هم کشور مستقل شد دارای فرهنگ بوده وقتی که یک کسی مثل موسی خورن که ارمانیان او رو مثل پدر خودشو میدونن گذشتی خودشو نحفی بکنه یک کسی مثل یزنیک هم همین ترتیب یک افثانه های ها، تیره و احمالود ناهمبار نادرست در کیشی در ایران گفته که هیچ در های باستان ایران ام نمونه نداره در باره زروان فقط دو جمله در امستا اومده زروانه عکرانه هی یزمیده یعنی زروان بیکران رو میستاییم زروانه قو قوخ و ذاته یزمیده یعنی زر زروان دیر در قو یعنی دیر یعنی کوخانه خو یعنی خود آمده خود آفریده رو تایم. من در بخش نخست این برنامه در این باره صحبت کردم و گفتم که این چه مفهومی داره از ذره فیزیک امروز جهانم این در حقیقت سخن موجهه برای که خداوند زروان رو نیافرید خداوند جهان رو آفرید و از حرکت هر کدوم از این ستارگان و خرشیدها در جهان زمانهای ویژه برای اونها پدید میاد که کل اون مفهوم بزرگ رو در ایران باستان بهش می و این نبوده یه چنین دینی که از دست چپ, چپ و راست و آهریمان اینها اینا همه ریزنیک کقباتی گفته و بعدم اروپاییان که خواستن که در حقوق با فرهنگ ایران مبارزه کنن همین رو در کتاب های خودچون بزرگ کردن و مرتبن دارن تبلیغ میکنن بدونید که زروان مفهوم است که فیزیک امروز جهان اون رو تایید میکنه یعنی مجموعه زمانهایی که از حرکات ستارگان در افلاک پدید میاد یه چیز عظیمی است که ما نمیتونیم بفهمیم مونتا اون رو بوده چهارم لقب دادن و امروز فیزیکی جهان این رو داره تایید میکنه و هیچ کشی به نام زربانیست نداشتیم یک قسمت دیگه از این پستش رو هم شما سه قسمت بود در مورد آینه زرتوش در مورد هر کدوم از آین ها خدمت کدومش کدومشون بیشتر هستش آین زرتوش و مهر قوم خب مسلمه که میر پیشتر از این آین زرتوش بوده. ملت‌های ایرانیان چون این کیششون کیش ملی بود با فرهنگ ملی همرا بود. همه اینا رو با هم درستن. ما بعد از اینکه کیش زرتوش اومد نفی در حقیقت ویژگی‌های کیش مهر رو نکردیم. در گفتارهای زرتوش هم که در گاتا آماده اصلاً نفی فرهنگ گذشته نشده. این که کما اینکه موقعی که ما کیش مهر رو داشتیم نفی پروردگشان نشد. یعنی کیشن که درباره او باز در بردم های پیشی من سخن گفتم هیچ کدوم نفی‌ای دیگر ندارم همین امروز در خردو اوستا شما بینید که خوشید نیایش داریم ماه نیایش در میون مو تعلق می‌شه به کیش پرioutilکشی یعنی کیشی که زمان جمشید بود و 14000 سال پو... سال پیش در ایران رواج داشته اگر اون الان در خورده اوستای زرتشتی هست پس ما بر این معلومه که ما نقاط روشن کیش‌های باستانی خودمون رو به خاطر فرنگ خودمون از دست ندادیم در مورد بخش های در داستان رستم و سهران خب، در این, این مرور در... فرمونیم بله بله این, دا، دا این هم مثل بقیه بخش های ام... در امان نمونده افزایندگان سرودان خود رو افزایندگان من اینا رو نمی خونم من از اون شانومه خودم می خونم اگر بخوام اونا رو بخونم وقت،, وقت خیلی زیاد میشه. تمام. جو افزاینده... اشاره می فرمونیم گاه اشاره می و تمام سخنانی که میگم سخنان خود فیدوستیست از روی شاهنامه پیشین که ترجمه شده به وسیله چهار نفر در خراسان و در توس به فرمان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی اینا رو دارم من میخونم و منطقه افتوزه ها رو در شاهنامه خودم شهر دادم همه رو در زیر و به خط نازکتر چاپ کردم من خودش میگم که میبینم که ایشون خیلی آدم دقیقی است شاهنامه منو تهیه کردم که اینها رو خودشون بخونن دیگه من در این برنامه کوتا میبینید یک این برنامه کوتایی نیست ولی همه شاهنامه ایراد میگیرن که چرا قل کم تو سخن میگه خب در این برنامه در این وقتی که من نمیتونم زیادتر از این به افسوزها بپردازم درود بر شما درباره واژه خورشید سخن بگویید مین کلی شمی خب درود به میمسین منم به شما میگم منم نبرمیدم درود به شما خورشید در اوستا هست خوهر یا هور خشائته هر دو معنی درخشندگی رو داره خور یعنی یعنی درخشندگی خشائته هم یعنی درخشندگی که بعد در فارسی شد در فارسی شد شید یعنی دو واجهی که هر دو معنی درخشان رو داره با هم اومده این واژه رو نظیرشو در دریای چست یعنی ارمی امروز ایرانیان نهادند چعه چسته یعنی درخشان درخشان درخشان درخشنده و اگر شما از سفید دمان از سوی خوروران یعنی قرب این دریاچه عبور کرده باشید میبینید که یکی از زیبا ترین شاهکار آفر میشه ایزدی در اینجا دیده میشه موج بر روی موج نور بر روی نور به قدر این صحنه زیبا و شگفت که خدام شما دیدید رفتید همچی مسافرت کردید؟ نه اونا که رفتن میتونن این دریا رو بره همین گفتن چه چستن. دو بار نام درخشش رو روش کداش دو و دریقا که نادانسته ما با این بندها یعنی صدهایی که کشیدیم این دریای عظیم شگفت بزرگ جهانی رو که منحصر به فرد اینو داریم خشک میکنیم. خشک باد اندیشه کسانی که اینطور نادانسته دارن این کشور رو رو به ویرانی میکشند. با سلام چه رابطه بین پرس و پروس وجود دارد؟ پوس پوستره یعنی فرزند در عوستا پوس را یعنی فرزند که به صورت پوس هم برمده منطقه بعد کم کم این به صورت پسر درمد برای مزکر. بر حالی که پوس یعنی فرزند در عوستا و پوستن یعنی تن فرزند دار که در پهلاوی میشه آپوستن در فارسی شد آبستن معنیش دیگر گون شد. به معنی فرزنده. پوس یا پوس به معنی فرزند. نه در مورد نجاد پارس توضیح بدین و آیا مردم فارس زبان فارس زبان جنوب شرق ایران از همان نجاده است. همه ما از یک نجادیم ما همه فرزندان و فریدون هستیم و این که میبینید که زبان ها اندکی دگرگونی داره به خاطر این درخت گشت تناور پر ریشه فرهنگ ایرانه یک درخت گردوی چند هزار ساله را در نظر بگیرید هر کدوم از شخواه اگر چه همه در شاخه گردو و میوه گردو میده اما هر کدوم از شاخه ها با دیگری اندکی تفاوت داره اینه که مثلا در آلمان که کشور تازه ساز هست دو تا زبان بیشتر نیست اما در ایران به تعداد رسته ها ما زبان داریم همه ما فرزندان فریدون هست خب ادامه داستان رسته ما سهراب یکی چوبرگشت سهراب گسته پیر یا دجدار پیر بیاورد بعد, ب... بعد از جنگ ب... گودا okay, بر. بر. بر. بر. بر. بر. بر. فردا بام داد از این باره گرد برمیارم بیارم بر. برگشت سهراب دجدار پیر بیاورد و بنشاند مردی دبیر یکی نامه به نزدیک شاه یعنی کابوست برفکند پوینده مردی راه که آمد بر ما سپاهی گران همه رازم جویان و گندابران هجیر دلاور میان را ببست یکی باره تیر تک برنشست بشد پیش سهراب رزمازمای برست پشت ندیدم فوزون زان به پای که برهم زند مجر و جنگ جوی. گرایت بینی سوی مغز بوی. میگه در یک موجه به زدن هجیر اسیر سهراب شد. منتها این بیت یک شاهکار عظیم دانشیه که کسی توجه نکرده در بیت دوم در لطه دوم یه گر یعنی یا آیت بینی سوی مغز بوی یعنی ایرانیان میدونستن بوی رو خود بینی یعنی این پررهای بینی درک نمیکنه کنه بلکه این این بو میاد به طرف مغز و مغزه که این بو درک میکنه میفهمید چه مفهوم بزرگی دانشی در اینجا است منیاکان خودمون خرد می بلکه خودمون متأسفانه خرد شدیم این امکان خر من این, این داستان حددود 5 یا۴ چهزار سال پیش اتفاق شده. ما اون م میدونیم که این بینی نیست که بروروم میکششه یا این گوش نیست که نیست ب دیگه جای دیگه از در مغزه بیدار شو ایرانی بیدار شو. اناندار چون او ندیده است کس تو گویی که صام سوار است و بس اگر دم زند یعنی اگر درنگ بکنه صبر بکنه خوشبختانه در تاجیکستان که شما این سعادت داشتین ببین اگر بخوین صبر کنید میگن دم گیرید دم, گیریتان. دم گیریتان. یعنی صبر کنید دم گیرید یعنی نفستون بکشید تو کن. از نفس ماله. اگر شهر شهریار زمین نراند سپاه و نسازد کمین سر بخت گردان همه خفته گیر جهان از سر تیغش آشفته گیر شنامه به در آمد به شب ترستاده بر جست و نقشاد لب یعنی کسی که سخن نگف آروم و آغاز کرد به رفتن به زیر دژندر یکی راه بود که آن راه دشمن ناگاه نا بود بونه بر نهاد و سراندر کشید یعنی دشدار فرمان داد که از این راه زیرزمینی بگریزید بدان راه بیراه شد ناپدید چو خورشید برزد سر از تیر کوه میان را ببستند توران گروه سپهدار سحراب نیزه دست یکی ابر باره تیز تک برنشست در نسخه های موجود اومده یکی بارکش باره برنشست یعنی بارکش باره یعنی خر یعنی یابو یعنی قاتل, قاتل. و میبینید که چطور دست آوردن؟ من که ممکنه که سهراب پهلوان مثلا سپاه توران سواری باره بارکش بشه من پیشنهاد دادم که او باغری تیز تک برنشستن و ضمننا باید بدونید که پهلوانان و شاهان یه اسب ویژه ای خودشون داشتن عوض نمیکردن اینو و اون ا دیگه رکاب به هیچ کسی نمی داد مگر به محتر یعنی کسی که او رو آب میده خودار رو تیمار میکنه و به خود سوار به هیچ کسی که رکاب نمی داد یعنی نمیکسد کسی سوارش بشه خود رو زمین سوار رو زمین من منظره ها بسیار دیدم کردن خود می زدن زمین که سوار بخور زمین. حالا احتمال دادن اینجا دستی پای جای هم از سوار بشکنه ولی رکاب نمیدن به هیچ وجه اسب به کسی غیر از سوار خودش رکاب نمیده. حالا این اسب ویژه خودش بر باشه اوبار تی باید باش که سرا بتون بله عبر باره تیزدک. نه تیزقیمتبارری بارکش مین صحبت های افزوده این چیزهاییست که تخرریبایی که افزند کردن. آمد در دژ گشادند باز ندیدند در دج یکی رزم ساز به فرمان همه پیش اوی آمدند به جان هر کسی چار آمدند پیر و پیر زنه و بچه ها و اینا کسانی که بودند همه اومدند پیش اوزان سوچو نامه به خسره و رسید غمین شد دلشکان ها شنید چون این گفت با پهلوانان به راز که این کار کردد به ما برد راز ببینید اینجا از یک به نام راز سخن میگه در ژان باستان بوده که امروز هم مسائل مهم جنگی رو پخش نمیکردن که میدون رادیو بود به هر همه بکنین این در راز نگه میاشتن. به ویژه یک نوع نوشته های به میبرن همین اکنون هم که این نوشته ها رمز داره. و هر روزی یا هر هفته یه مرتبه به رمزار رو عوض میکردن که این رمز اگه به دست دشمن بیفتن متوجه نشه. این که امروز در همه جنگ ها به کار میره این اون زمان ما انجمن راز داشتیم که پادشاه سران رو، بزرگان رو جمع میکنه در انجمن راز که نگن، برای چی نگن؟ برای که داستان فاش نشه و ایرانیان نترسان. روحیهشون قوی باشه. چنین گفت با پهلوانان به راز که این کار گردد به مادر، به ماور به راز، چه سازیمو؟ در مان این کار چیست از ایران؟ اما ورد این مرد کیست بران برنهادند یک سر که گیف شود نزد سالار نیو. واقع جالبه آقای دکتر جنیدی خود همکارای منم که تو شبکه‌های دیگه هستن موقعی که برنامه ما هست برنامه شما در ام رو, رو می‌شینن میشنون و خانم یگانه از همکاران خوبمون ایشون الان گفتند که تماس گرفتن گفتند خیلی تشکر کنید از آقای دکتر جنیدی عزیز و بفرمایید که آقای دکتر انقدر زیبا شما میخونید که ما همه علاقه شدیم بریم شاهنامه بگیریم بشینیم بخونیم اصلا کار ما این هستش حدب خب من, من شادمانم که یک چنین جنبشی پیش میاد و ایرانیان باید شناسام خود خودشون رو بخونن از اون خب پیشنهاد میکنم از اون شالومایی که بنیاد نشور حدیه میکنه به شما یکیشو نمیامدین بگیرید من میام میگیرم تشکرش من به این خانم یگانه بدید بخاطر بنو گونجگان هر کدوم که علاقمند شدن از این بله. شالومو حدیه این اصلا این ف... این فضا رو این فضا رو ما باید ایجاد بکنه مثلا هدف برنامه ما هست که ما گفتیم من در آغاز هر برنامه میگم امروز من یادم رفت بگم این هست که ما دور هم میشینیم مثل قدیم مثل پدرانمون که این کار رو میکردن شاهنامه رو باز میکردن میشستن برای ما شاهنامه میخوندن راز و رمزهاش رو میگفتن با همون حرف میزدن و این روحیه رو به ما میداد این تاریخ رو به ما معرفی میکرد شادبانم که این برنامه دار این کار میکنه من پیامک کار رو بخونم بزرست. چون ببخشید خیلی زیاد هست سلام طبق نظری مارسل اود دانشمند بلژیکی تمام جوامع از ایران نشأت گرفته است. آقای محسونی عزیز از نجف آباد. درود بر شما در جهان غرب کم کسانی هستند که بتونن این حقیقت واقعی رو و این خورشید درخشان رو که ایران باشه و فرهنگ ایران باشه ببینن. تجاهل میکنن و تظاهر میکنن و همشون نژادخوشونه به جاهای دیگه میکشونن اما بالاخره خورشید فرهنگ ایران درخشان و این درخشش و شکوهش جهان رو فرا خواهد گرفت به یاری یزدان و به کوشش جوانان ایرانی چطور میتوان با استاد در ارتباط بود من یک فیلم ساز انیمیشن هستم و علاقه زیادی به شاهنامه دارم و کارهای زیادی در این باره کردم کیاوش پارسا شماره بنیاد نیشابور رو بیاقیم بله عرض میکنم حالا در طول برنامه حالا بعد از این عرض میکنم از اینا رو بخونم که به موقعش خدمت این دوستمونم عرض کنیم شما از طریق بنیاد نیشابور میتونید با استاد در ارتباط باشید با استاد صحبت کنید و مطالب رو بگیرید من ادامه داستان رو شما زمان زیادی ما نداریم تلفن هایم هست که باید پخش بشه و سؤال کردن شما پاسخ بفرمایید اگر امکانش هست شما بگم براتون چرا چون من شماره تلفون بنیاد نیشاب او رو یادم رفته بود الان استاد نوشتن دادن به من من بخونم من بگم نداره از دومرتون کم آره من همش ترس آدم شاگرد خوب باشه بعد اصلا این کلاس شاگرد خوب باشیم همه ما بیاری ارزان انشاءالله بیاری هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار آرامتر نمره هیجده هست هنوز هشتاد 88... و هشت نیوده شده <تصالحن> <تصالحن> جده میکنم کلاس برای من 88 96 27 چهار این شماره تلفن بنیاد نیشابور هست شما میتونید تماس بگیرید اونجا تشریف ببرید و ما استقبال میکنیم مثلا یکی از فکرهای ما در این برنامه این هست که هنرمندان عزیز فیلمسازان کارگردانان خصوصا در زمینه انیمیشن بیان و این کار رو انجام بدن و این چیزی که یه چیزی میخواستم بگم یادم را. حالا شما ادامه داستان شما من از جا میخونید یا من ادامه بدم ادامه به که من پیامک ها رو آن این رو میخواستم بگم یه موقع هایی که میبینید حواصل من پرد میشه به خاطر این که من دارم پیامک های شما رو میخونم که پیامکهایی هایی رو که با توجه به موضوع هست چون پیامک های شما بسیار زیاد هست و باید با توجه به موضوع ما پیش بریم انتخاب میکنم که بتونم همه پیامک ها رو بخونم از استاد معذرت میخوام در کباس درشون حواظم میره جای دیگه من متوجه میشم بله میبینم که شما باید در دو جبه کار بکنید ببخش بفهم یکی نام فرمون پس شهریار نوشتن برای رستم نامدار نخست آفرین کرد بر پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان جزاویند کاری نو آمد به پیش آن دلم گشت ریش چنان دان که اندر جهان جست تو کس نباشد به هر کار فریاد رس. البته به هر کار من پیشنادم که بدین کاره یعنی برای این کار من یاری تا رو میخوام دوباره میخونم چنان دان که در جهان جز و کس نباشد بدین کار فریاد رس. چون این را دیدند گردان نیو که پیش تو آید گران مایه گیو چون نامه بخوانی بروز و بشب مکن داستان را گشاده دولت یعنی رازه یعنی چیزی که در موضوع که در انجمن راز مطرح شد تو هم به صورت راز نگهدار یعنی مردم ایران نباید متوجه بشن پریشان بشن مگر با سواران بسیار هوش ززاول برانی براری خروش بگیب آن زمان گفت بر ساون دود انان تکاور به باید بسود انعان این دهن اسبه مرتبا دهن اصبه باید برای اصل فررکت کنه و دهنش تو بدن. مرتبا دهن اسب در دستت باشه پساوایی پسودن لمس کردن یعنی پیاده نش از هست تا جایی که میتونی سوار بر اسب باش. نباید چون نزدیک رستم شوی به ذابول بمانی اوگر بغنوی یعنی استراحت کنی اونجا اگر شب رسی روز را بازگرد بگویش که تنگ ها اندر آمد نبرد از اون نامه بستد به کردار باد برفت و نکرد هیچ آرام یاد یعنی هیچ آرامش پیدا نکرد چون از یکی زابلستان رسید خروش تلایه به دستان رسید یعنی زال نهادند بر سر بزرگان کلاه مدونید برکه متوجه شدند که تلایه از شیوه لباس چون در ایران باستان هر استانی برخصوی لباس داشت تا پنجا شست سال پیش هم هم طور بود. یه دفعه ما رو کردن مثل توی... لباسه متحدود شده. آره. هنوز هم هست. هست منطق کم شده. حیف. حیف از اون همه لباس زیبایی. این این آره. رنگ آرنگی. از درش و از جامو، و از آرایش اینا می که گیو. گیو البته پهلوان لورستان بوده. مهم کار چون خیلی مهم بوده گیو رو میفرستن برای این کار. اگر نه میشد که این کار رو با یه سوار معمولی کرد چون کار خیلی خیلی مهم بوده پهلوان لورستان و پدر لوران امروز ایران رو فرستادن برای این کار نهادند بر سر کلاه کلاه تهمتن پذیره شدش با سپاه. زره سوی ایوان رستم شدن بودند و یک پاره دم زدند یک پاره یعنی کمی این واجه هنوز در خراسان یعنی روان هست یک پره یک پره یعنی کمی بگفتان چه بشنید و نامه بداد و سهراب چندی سخون کرد یاد تمتن چه بشنید و نامه بخواند بخندید از آن کارو خیره بماند که ماننده سام و گرد از مهان سواری پدید آوردن در جهان بباشیم یک روزو دم برزنیم یکی لب خشک نم برزنیم اوزان پس گراییم نزدیک شاه به گردان ایران نماییم راه بدین تیزی اندر نیاید به جنگ. نباید گرفتم چون این کار تنگ یعنی خب گی وقتی گفت که من امروز فردا باید بدیم گفت نه فعلا باید باشیم. باشی به منی دست بردن و مستان شدن زیاد سپهبد به دستان شدن این آقاینی بوده که من در یکی از برنامه‌ها. فکر کنم گفتم اگر نگفته باشم با این پیامک ها به من بگن وقت من در شماری دیگه خواهم گفت که این آین چطور بوده دیگر روز شبگیر هم بر خمار بیا آمد تن تن برا راست کار. یعنی مجددا فرمان نهمانش داد سه دیگر سهرگر بیا راست می نه آمد برا یاد کابوس کی به روز چهارم برا راست دیو یعنی جامعه خودشو پوشید خودش آراش جنگ داد. چون این گفت با گرد سالار نیو که کاووس تند است و حشیار نیست. همین داستان بر دلش خار نیست. قمین بود از این کارو دل پرشتاب شده دور از او خورد و آرام و خواب. به زاورتستان گردرنگ آوریم. زمین باز پیکار و جنگ آوریم. یعنی جهان رو به جنگ میکشونیم. یعنی به خاطر اینکه کاووس. تندو، حوش... تند و حشیار نیست بدو گفت رستم که من دیش از این که با ما نشورد کس اندر زمین کسی با ما مقابله نمی کن بفرمو تا رخ را زین کنن دمن در دم نای روین کنن یعنی دم یعنی نفس نفس رو به دن نای روین وارد کنن تا نای روین به آواز بیاد سواران زابل شنیدند نای برفتند با اگر صلاح بدونید و چون زمان زیادی نمونده آی دکتر جانهیدی ما داستان رو تا همین جا داشته باشیم که انشاءالله هفته آینده نه در هفته بعد از اون با دوستان مطرح کنید ساعت رو میخواستم ارز کنم بست چهل شش دقیق هست تلفن‌های های شما هم هست من الان میخونم پیام کاروی تعداده هم چون پیام کار زیادی اومده میخونم به شما پاسخ و فهمید تلفن ها آیا خط از نون ما همون خط پهلوی ساسانی است؟ خط امروز ما یه خط برگرفته مستقیم از پهلوی ساسانی اتفاق خط عربی هم از همون خط گرفته شده و من یک پژوهشی دارم که به زودی منشه خواهم کرد آقالا در پایگاه اینترنتی بنیاد نشه بود که ببینیم که خط فارسی و خط عربی از پهلوی گرفته شده چیزی که برعکس اون توی مکتب ها با ما گفتن یعنی فکر میکنی که خط عربی بوده و بعداً خط فارسی از رو اون گرفته شد البته بعضی از واقع ها مثل فرسان ساد و زاد و تا اینا در خط پهلوی نبوده ولی خب اینها به قیاس اون در خط عربی افزوده شده سلام شاهنامه تصحیح شده ای استاد جنیدی چند بیت دارد حسن از تهران هنوز رایانه به ما جواب نداده و من هم نگرفتم اونطا تمام ابیات که در شاهنامه‌های مختلف بوده اینا رو ما گردآوری کردیم اونتا ابیات افسودان ریز چاپ کردیم با شهر آیا این بیت از شاهنامه است یکی داستان آن شهریار زکار خود و گردش روزگار که را در پس فرد دختر بود بود. بود. اگر تاج دارد بدختر بود که سنایی هم در حدیقت حقیقه آورده شده و به طور کلی میزان و میار کلی برای شناخت عبیات شاهنامه و افسوده ها وجود دارد یا هر بیت را باید جدا بررسی و پژوهش شود با سپاس از پاسخ شما خب این بیت دو بیت از شاهنامه نیست برای شاهنامه بزرگ با بزرگترین از دختران و زنان یاد کرده و من در برنامه پیشین خوندم تو بازم الان میتونم بخونم که زن اگر پارسا باشد و رازن یکی گنج باشد پراکنده زن ببینید؟ فیدوسی، نظر فردوسی و فرهنگی ایران در زن اینه اگر پارسا باشد و رایزن یکی گنج باشد پراکنده زن به ویژه که باشد به بالا بلند، فروخ اشتطاب های مشکل کمند، خردمند و بادانه و نوز و شرم سخن گفتن خوب و آوای گرم این گفتاریه که فردوسی درباره میگه چطور ممکنه که یک چنین گفتارهایی درباره فردوس درباره زن ایرانی که مادر ایرانیانه زن ایرانی مادر فریدونه زن ایرانی مادر رستمه چطور ممکنه که ما درباره او این چنین اندیشه داشته باشیم و چنین گمان ببریم منتهایی اینکه من در بیرای شانومه بیسته هفت یعنی میار رو معین کردم که بر پایه اون بیسته هفت میار و سنجه عبیات افضاد تشخیص دادم این مکول به اینی که این شنونده گرامی شانومه من رو به بوجه پیش گفتار بر بیرای من رو بخونند تلفون ها آماده هستش و می شنویم فکرم الان تلفون پخش کننی سکوتی هم افتاد به خاطر این بود اما بذارید من یک پیامک رو بخونم بعد تلفون رو پخش کنید سلام منظور استاد از این که ایرانی بیدار شد چیست با سپاس فراوان لطفا توضیح بفرمایند. درود منظور من است که چشم رو بگوشاییم با خرط خودمون داوری بکنیم ارزش کار نیاکان خردمند رو بشناسیم پایگاه بلند اونها رو در تاریخ جهان و در فرهنگ و خرد و دانش جهان بازیابیم و این پرده قمالود بسیار سخت بسیار دشمنانه رو که از سوی جهان قرب بر روی نقاط روشن تاریخ ایران کشیدن به یک سو بزنیم خودمون رو و پایگاه خودمون و نیاکان خردمندمون رو در این جهان بازیابیم بیدار بشویم سلام و خسرواشید خدمت شما و استاد عزیز آقای جنیدی می‌خاستم از استاد جنیدی سوال کنم ببینم از بزرگان شاهنامه کدام یکشون منتسب به ایل بختیاریه با تشکر احمد نریمانی از اهواز من تا گفتار پیشین گفتم که شفه‌دار لرستانه و خوشبختانه بسیار از این پیر و پیرزن‌های زنهای بختیاری هم میگن که گیوگودرز نیا خانم ما بودند آقای میمسین کلی شمی که به صلا انگلیسی هم نوشن کلی شمی درست درست واجه است این رو فرمودنده بخشید اگر اشتباه خوندم چون ناشناس این به فامیلی، اشانا موفق باشید تلفن بعدی رو بشنمیم لطفاً با درود خدمت استاد جنهیدی عزیز سوالی داشتم از خدمتشون ایشون می در رزم رسم و سوراب سورابی ها گروه از سیستانی بودن که کوچ کرده بودن و برگشته بودن برای مبارزه در صورتی که در داستانی که فردوسی برای اینا میسرایه میگه که سهراب دائما در جستجوی اصل و نجاد خودشه حتی موقعی که با رستم روبرو میشه مرتب میخواد که رستم خودشو معرفی کنه. ای چطوری میشه؟ آیا اینا که اومده بودن برای جنگ پس چطور اومدن که اصل و رو بپرسن؟ این تضاد چطوری می‌بینم؟ و این این یه سوالم که داشتم در مورد خط ایرانی و عربیه که چرا ایقدر به هم نزدیکم و کدوماشون که انترم با تشکر دیخان هستم و درود بر سپاهان و درود بر آقای اگر منظور پیدا کردن پدر بود همراه با سپاه و با سپاه دشمن بویژه همراه با سپاه دشمن این کار میسر نمیشد من در برنامه پیشین گفتم این کار در حقیقت فریدون رو با فرانک و سهراب رو با تحمینه سنجیدم وقتی که فریدون آمادگی جنگ اعلام کرد فرانک من به او گفت که نه هنوز زوده جهان را به چشم جوانی مبین اما مادر سهراب هیچ مبارزهی با اندیشه فزن نکرد سهراب میتونست بدون سپاه و بدون لشکرکشی و آرایش جنگ به ایران بیاد به دستپوسی پدرش برسه این چیزیست که در شاهنامه است و فیلوسیم همینو گفته غیر از این چیزی نفرموده سپاس فراوان از شما آقای دکتر جون ایدی باشید شما همینطور با سلام من این برنامه رو از رادیوی ماشین دنبال میکردم و حالا از ماهواره دنبال میکنم از کنم خدمت شما آی از اسوان از کنم خدمت شما شنوندگان نزید که در روی خاتورت اون بخشی که رادیو هستش شما رادیو فرهنگ رو میتونید اونجا پیدا کنید و برنامه ما رو از طریق ماهواره هم بشنوید. تایخوننده برنامه خانم نیافر سردبی و مجری برنامه همین جزا هدایتی راد صدا برداران آقایان تاهیری و آقای حیدری هماهنگی برنامه سرکار خانم مرجان عابدی سپاسگزارم از شما مانده نباشید شاد باشید به روزگار در مانده نباشید مردمان ایران خداحافظ